شنبه 28 آوریل 1945 مادرم سراسیمه از خواب بیدارم کرد آمریکای ها را رو محاصره کردند مردم هم در شهر سر به شورش پرداشتند هنوز دست به گریبان این اندیشه بودم که چگونه پایان کار این چون این راحت و سریع فرا رسد که این اعلامی از رادیو پخش شد این صدای جنبش آزادی بخش باباری است گروهان مترجمان منطقه هفتم دفاعی تحت رهبری سروان گرنگراس علیه رژیم جنایتکار نازی به مخالفت برخواسته است. در ساعات اولیه بامداد امروز، یک دسته از این گروهان ایستگاه خبرگزاری مونیخ را به تصرف درآورد. ساعاتی بعد، ریتر فون آپ، فرماندار باوریا و کریستیان وبر، فرماندار مونیخ دستگیر شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده، کریستیان وبر محاکمه و تیرباران شد. به شهرفندان مونیخ هشدار دهیم که از منازل خود خارج نشوند و در خیابانها رفت و آمد نکنند. جنایات ها به اوج خود رسیده است. اما آنها به مجازات اعمال ننگین خود خواهند رسید. همکنون افراد رزمنده ما به قرارگاه های رئیس تشکیلات حزب واقع در مونیخ پولاخ که بقایای لشکر اس, اس به فرماندهی گوتس فون در آن سنگر گرفتند حمله ور شدند. ما آنها را در هم خواهیم کوبید. آجودان سروان راست به نام سطفان کاراسیولا در پشت خطوط آمریکایی ها در مورد شرایط تسلیم شهرمان مشغول مذاکره است. مرگ بر رهبران نازی. زنده باد آزادی. همانطور که قهوه هم را مزه مزه می کردم مادرم گفت طبق معمول شورشگری در آخرین لحظه. گروهان مترجمان جز به شبکه اطلاعاتی منطقه هفتم دفاعی بود. هر یک از اعضای آن دستکم به سه زبان آشنایی داشت و همگی اهل باواریا و افرادی با تجربه بودند. بیشتر اعضای آن مانند سودوان برادر قهرمان نامدار اتومبیل‌رانی دهه 1930، تمایلات شدید سلطنت طلبانه داشتند. برای مثال، ادعای طرفدار خاندان ویتلس باخ بودند. بعضی از آنها سوسیال دموکرات و تعدادی از آنها هم کمونیست بودند. سروان که به کار وکالت اشتغال داشت به شدت تحت تاثیر کاراسیولا بود و از اوایل ژانویه که برای همه مسلم شد شکست اجتناب ناپذیر است گروه کوچکی را تشکیل دادند که می توانست با نزدیکتر تر شدن نیروهای متفقین سازمان نازی را در مونیخ سرنگون و شهر را به متفقین تسلیم کند و بدین ترتیب از بمباران شهر توسط نیروهای متفقین جلوگیری نماید پس از رسیدن به این هدف پوشش خود را بر بخش های دیگر تر متمرکز کردند. تا 28 آوریل ظرف چهار ماه، یک گروه رزمی متشکل از یک گردان پیاده کوهستانی، یک, یک یگان زرهی با دوازده تانک و دو گروهان مهندس سازمان داده بودند. تبادل اطلاعات و خدمات پیامرسانی به روحانیون یگان ها محول شده بود. تر کاملا مشخص بود. در روز معود، قرار بود همزمان به ایستگاه رادیوی مونیخ واقع در شمال غربی ایستگاه اصلی راه آهن درست در قلب شهر ایستگاه فرستنده رادیویی واقع در ایسمانینگ، شهر کوچک تجاری واقع در نهده کیلومتری شمال مونیخ حمله شود یگانهای کماندو مأموریت داشتند مهمترین روزنامه جنوب آلمان مونشنر نوستناخریشتن را که دفتر مرکزی آن در خیابان سنلینگر قرار به تصرف خود درآورند. دفاتر و چابخانه ی و باختر، ارگان رسمی حزب نازی هم در صورت لزوم به اشغال در میآمد این روزنامه در یکی از مناطق مسکونی مونیخ واقع شده بود و تنها چند صد متر با رودخانه ایزار فاصله داشت. یگان زرهی، یک گروهان مهندس و دو گروهان پیاده کوهستانی دستور داشتند در مونیخ، ای روز هزلوه واقع در در ایزار در جنوب مونیخ به حال آماده باش باشند. و همزمان با آغاز حملات دیگر آنها هم به قرارگاه های رئیس تشکیلات حزب واقع در پولاخ که در آن دوروبر بر بود حمله کنند. از آنجا که احتمال تصرف همزمان قرارگاه ها قطعی نبود، انفجار راه های خروجی به عنوان راهکار فرعی در نظر گرفته شد. تا به این وسیله از فرار نازی ها جلوگیری کنند. کنند. بیگان های کماندو مأموریت داده شده بود که بلافاصله فاصله ریتر فون آب، کریستیان وبر، شهردار مونیخ و افراد برجسته حزب نازی را دستگیر کنند و مراکز برق، آب، گاز، مخابرات و زندان مونیخ را تحت حفاظت شدید قرار دهند. سربان گرنگراس بر این عقیده بود که با شروع عملیات ادده دیگر نیز از تر حمایت می کنند و به آنها می پیوندند. طبق نقشه به مجرد شروع عملیات، سطفان کاراسیولا و دو درجه دار سوار بر یک فولکس برای مذاکره با مقامات آمریکایی و تسلیم شهر راهی محل استقرار آمریکایی‌ها میشدند. با وجود این هنوز بسیاری بر این باور بودند که تا زمانی که پیشوا زنده است سوگند وفاداری به او را نباید شکست اما سربانگرنگراس ترتیب این کار را داد دفتر دریافت علائم تلگرافی ناحیه هفتم دفاعی واقع در خیابان واکمولر، به راحتی می‌توانست در شبکه سراسری نفوذ کند و با اعلام خبر درگذشت هیتلر، چون این وانمود کند که پیام مزبور از برلین یا جای دیگری رسیده است. در بامداد روز 27 آوریل، سربازان لشکر نهم زرهی آمریکا به فرماندهی ژنرال پتن و سربازان مراکشی به فرماندهی ژنرال کونیگ فرانسوی وارد شهر آکسبورگ در 48 کیلومتری شمال شرقی منیخ شدند. پیام پیامرسانی سروان گرنگراس هم ظرف 24 ساعت او را در جریان کامل خبرها قرار دادند. یگان زرهی و ادههای پشتیبانی کننده آن به گروس هزلوه نقل مکان کردند تا وانمود کنند که به سوی دژ ملی عقب نشینی می کنند. ساعت 4:50 دقیقه بامداد روز شنبه 28 آوریل سال 1945 به عنوان روز معود تعیین شده بود. در این 24 ساعت همه افراد تا نزدیکی عدف هایی که در اطراف شهر می می‌بایست مورد حمله قرار گیرند حرکت کرده بودند. بازوبندهایی به رنگ آبی و سفید توضیح شده بود که سه حرف F A به رنگ سیاه در وسط آن به چشم میخورد که علامت اختصاری فرایهایتس اکتیون بایرن جنبش آزادی بخش بایرن بود. علاوه بر آن طبق برنامه خبر جعلی درگذشته هیتلر را هم به رادیو مونیخ داده بودند در ساعت چهار و سی دقیقه بامداد روز شنبه یگانهای کماندو در محبطهٔ سربازخانهٔ رایتر در مونیخ گرد آمدند بیشتر آنها به سر سبک و نارنجک مسلح بودند حتی در انیفرمشان هم تغییراتی مشاهده میشد نشان اقاب که معمولا در طرف راست سینه نصب میشد و علامت صلیب شکسته را برداشته بودند سروانگرنگراس وارد محبته شد اگرچه سپیده دم در ساحل ایزار نمایان میشد اما هوا هنوز تاریک بود افراد ساکت بودند تنها صدایی که شنیده میشد صدای قدم های و چکاچک سلاح ها بود سخنرانی کوتاهی کرد از فرمانده یگان های کماندو خواست که وظایف خود را مرور کنند سپس چش به صفحه ساعت خود دوخت ساعت چهارو و دقیقه بامداد یعنی ساعت مقرر بود. هنگامی که افراد گروه کماندو به داخل کامیون‌هایی که در انتظارشان بود پریدند، سروان گرنگراس فریاد زد: موفق باشید. زنده آزادی. و سپس به دفتر کار خود بازگشت و به طور تصادفی و دو درجه دار که منتظرش بودند گفت: به محض اینکه ایسکا به تصرف ما درآمد، شما برای انجام مذاکرات بروید. غیر از چند خط تلفن که هنوز کار میکرد تنها وسیله ارتباطی آنها امربرانی بودند که از موتور های BMW استفاده می کردند. پنج دقیقه مانده به ساعت شش بامداد داد بی سیم را روشن کردند یک دقیقه گذشت یک دقیقه دیگر سه چهار پنج و درست سر ساعت شش بامداد. گوینده با صدای گرفته و حیجان زده و به لحجه باوریایی اعلامیهی به این شهر قرائت کرد. این صدای جنبش آزادی بخش باواریا است. همه گی فریاد کشیدند. ما موفق شدیم. سپس کاراسیولا، با دو دستیارش سوار بر فولکس واگون، آنجا را به سوی فرسینگ ترک کردند. اداره رادیوی مونیخ، ایستگاه فرستنده و پست تقویت کننده آن، در ایسمانینگ و دفتر مرکزی روزنامه به سرعت به تصرف افراد درآمد. ریتر فون آپ در آپارتمان خود واقع در روموند اپلاس تحت نظر قرار گرفت. کریستیان وبر، مهتر سابق و فرماندار وقت مونیخ، در کنار یکی از معشوقه‌هایش در اتاق خواب بازداشت شد و در حالی که معشوقه‌اش و زاری سر داده بود، او را کنار دیوار گذاشتند و تیربارانش کردند. بعضی از شهروندان مونیخ او را سزاوار مجازات سنگینتری تری کارکنان دفتر روزنامه فولکیشر به اوب تا حدودی مقاومت نشان دادند. اما یک شعل افکن همه را سر جایشان نشاند و چنانکه که باید و شاید ساختمان را تسلیم کردند. سازمان های برق، گاز و آب بدون کمترین مقاومتی به تصرف در آمدند و در همان حال، مردم کوچه و بازار اصلا نمی که در شهرشان انقلابی در حال وقوع است. به جز دو مورد همه ی کارها طبق نقشه پیش رفت. در ساعت اولیه بامداد یگان زرهی در پشتیبانی از پیاده نظام به قرارگاه های رئیس تشکیلات حزب گیزدر واقع در مونیخ پولاخ حمله کردند. اما یگان های رزمنده لشکر اس اس گوتس فان هلیشینگن که سالها در روسیه جنگیده بودند با ساز و برگ کافی در آنجا مستقر بودند و توانستن حمله را دفع کنند در ساعت دهه بامداد دیگر حتی یک تانک هم نمانده بود یگانهای پیاده و مهندس موقعیت خود را حفظ کرده بودند اما در همان حال افراد اس, اس هم در برابر آنها مقاومت می کردند. از داخل پادگان های رئیس تشکیلات حزب گیزلر با مخابره خبر حمله از واحد های اس اس درخواست نیروی کمکی شد در شمال مونیخ بین مونیخ و فریسینگ بخش عمده‌ای از لشکر اس, اس به نام وایکینگ قرار داشت که پیام رئیس تشکیلات حزب گیزلر را دریافت کرد و فرماندهی آنها به رقم مأموریتش که حرکت به سوی جنوب غربی و پشتیبانی از جبهه امپر بود یگان خود را به طرف مونیخ هدایت کرد آنها حوالی ظهر به حومه مونیخ رسیدند و بدین ترتیب نبرد سنگینی برای تصرف ایستگاه فرستنده رادیویی ای در ایسمانینگ در اخبار ناگوار پشت سر هم روی میز سروان گرنگراس جمع میشد، اما او یک ورق برنده در دست داشت سلطان کاراسیولا کسی که قرار بود در مورد تسلیم شهر مونیخ با نیروهای متفقین مذاکره کند و بازگردد در ساعت 7:15 دقیقه بامداد کاراسیولا توسط فرماندهی گردان توپخانه آلمانی از خطوط آلمان ها گذشت در آغاز نیروهای آمریکایی نسبت به او مزنون بودند اما سرانجام او را نزد ژنرال پتن بردند. پتن طبق معمول داد و فریاد را انداخت و از هیچ نوع تهدیدی، حتی تخریب و نابودی کامل آلمان فروگذار نکرد. اما سرانجام به کاراسیولا اجازه سخن گفتن داد و بعد هم با پیشنهاد او مبنی بر تسلیم بیقید و شرط قرارگاه های رئیس تشکیلات حزب گیزلر موافقت نمود. بدین ترتیب پتن از حمله هوایی تحریزی شده به بخش عمده مونیخ چشم پوشید و قرار بر این شد که کاراسیولا به مونیخ برگردد و متفقین هم تا غروب خود را به مونیخ برسانند. کاراسیولا شاد و سباکبال دوباره از خطوط آلمانی ها گذشت و به سوی مونیخ حرکت کرد. اما درست پیش از رسیدن به حمومه شمالی مونیخ ناگهان توسط افراد اس اس که جاده را مسدود کرده بودند مجبور به توقف شد. کارا در حالی که دلش خبرهای بدی را گواهی می داد، از ماشین پیاده شد. یک افسر اس اس به طرف او رفت. نگاهی به اونیفورمش انداخت و بلافاصله او و دو درجه داره همراهش را بازداشت کرد. سپس چند نفر از افرادش را که تناپایی در دست داشتند صدا زد تناپا را به شاخه درختی یابیختند و بیدرنگ هر به دار کشیدند. البته اس اس ها از مذاکره آنها با متفقین خبر نداشتند. آنچه چه خشم آنها را برانگیخته بود، ناپدید شدن اقاب و صلیب شکسته از روی ها بود. ظاهراً همین دلیل کافی بود تا هر فردی را بدون چون و چرا اعدام کنند. در حالی که گرنگراس در دفتر کارش انتظار می‌کشید، اوضاع ساعت به ساعت بدتر می‌شد. تا این ساعت می می‌بایست برگشته باشد. پیامی به این مضمون مخابره شد که دستجات مأمور حمله به قرارگاه‌های رئیس تشکیلات حزب مجبور به عقب نشینی شدند. کاراسیولا هنوز هم بر نگشته بود. صدای تیراندازی در خیابانهای مونیخ شنیده می شد. اساسها با ارتش درگیر شده بودند. یگانهای از لشکر وایکینگ، فرستنده ی رادیو مونیخ و پست تقبیت کننده ی آن در ایسمانینگ و اغلب تأسیسات مهم را اشغال کردند. تشکیلات جنبش آزادی بخش باواریا به سرعت منحل شد. سروان گرنگرا با نیروها و مهماتی که در اختیار داشت می توانست تا اصر در برابر اس, اس ها مقاومت کند. اما چون هیچ گونه خبری از کاراسیولا نرسید، این اندیشه قوت گرفت که آنها را تسلیم نکند. بنابراین اجرای تهر را به طور کلی لغف کرد. به این ترتیب، به دلیل آنکه هیچ گونه دستور عملیاتی صادر نشد، افراد از ماجرا و خبر شدند و دست به عقب نشینی زدند. کسانی که توسط اس, اس ها دستگیر شده بودند اعدام شدند. سربان گرنگراست متواری شد و از محلک جست اینها وقایع شنبه صبح و ساعت اولیه بعد از ظهر بود همه ما دور رادیو حلقه زده بودیم و به اخبار اطلاعیه هایی که جنبش شازادی بخش هر پانزده دقیقه یک بار پخش می میکرد، گوش می ساعت به ساعت اخبار را تعقیب می تا آنکه سرانجام با شنیدن اطلاعیهی به شرح زیر به شدت تکان خورد اطلاعی حاکی از آن بود که نیروهای جنبش آزادی بخش تارا مار شدند و در مونیخ نز برقرار قرار شده است. چند لحظه بعد رادیو اعلام کرد که رئیس تشکیلات حزب گیزلر تا پانزده دقیقه دیگر با شما گفتگو خواهد کرد. با ناباوری به یکدیگر نگاه کردیم. در این هنگام صدای شکستن شیشه و جرنگرنگ فلز از خیابان شنیده می شد. همسایه‌ها داشتن اکس ها و مدارک تهمت برانگیز را از پنجره بیرون می به زنی که از پنجره آپارتمان مجاور به بیرون خم شده بود و تصویری از هیتلر را در دست داشت، چشم دوخته بودیم. به ما گفت: آمریکایی‌ها ها در هومهی شهر هستند. و سپس عکس هیتلر را پرد کرد. منابرین آنچه را از رادیو شنیده بودیم به او گفتم و او وحشت زده آن را برای کسانی که در حال از بین بردن شواهد تهمت تاریخ رایش هزار ساله بودند بازگو کرد. در همین حال مادرم کتاب نبرد من نوشته هیتلر را از کتاب ها درآورد. آن را پاره پاره کرد و توی اوچه آشپزخانه ریخت. انگار دودکش آشپسخانه هم کشش آن همه ور راجی را نداشت. و ناگزیر دود و زننده از آن توی خانه پیچید. طوری که مجبور شدیم برای رهایی از آن افکار خفه کننده تمام در و پنجره ها را باز کنیم تا هوای تازه به داخل خانه جریان یابد. در ساعت سری بعد از ظهر اعلامیه ی گیزلر را درباره اساس ها دوستداران رهبر که اقریت خیانتکار را سر جای خود نشانده بودند از رادیو شنیدیم و از شجاعتی که غیر نظامیان در این بحران از خود نشان داده بودند ستایش کرد و درباره اینکه مونیخ متعلق به آلمان است و تا پیروزی نهایی از آن دفاع خواهیم کرد به لاف زدن برداخت اما درباره اینکه چه کسی پیروز خواهد شد سخنی نگفت تمام بعد از ظهر را در وحشت و حراس گذراندیم اندکی پس از ساعت پنج زنگ در خانه ما به صدا درآمد فریاد مقتعی هایل هیتلر، صدای برخورد ها و طبق معمول استقبال خوشکه سلام و خوشامد مادرم را شنیدم. یکی از فرماندهان سازمان جوانان هیتلری بود که مرا به خدمت فرا میخواند. ظاهرا مرا به عنوان فرمانده دست انتخاب کرده بودند و بنابراین میبایست هرچه زودتر در فرم کامل خود را به قرارگاه محلی سازمان جوانان هیتلری معرفی کنم. مادرم اعتراضی نکرد. او مثل همیشه نمیخواست احساسات واقعی خود را بروز دهد. هنگامی که با 120 پسر پیر و هنگه به دیگر به محل برگزاری مراسم سان و رژه رسیدیم در نهایت شگفتی متوجه شدم که پنج کامیان روباز در انتظار ماست. آنها بدون کوچکترین اشاری به مقصد یا هدف از سفر ما را بردند. گیج و بحت زده بودم اما همین که بچه شروع به خواندن سروده به پیش ای یاران کردند، اختیار احساس خوشحالی کردم ما همه سرودها را خیلی خوب خوندیم مگر نه اینکه موزیک به بچه‌های زده جرأت و شجاعت می‌دهد از خیابان‌ها که می‌گذشتیم دو نفر را دیدم که با حالت عجیبی به وضع حال ما می نگرند یکی از آنها محکم پیشانی خود زد و دیگری شانههایش را بالا انداخت سرانجام ما را در یکی از سربازخانه‌های اس اس به نام فرایمان که خارج از شهر بود پیاده کردند در محوطه میدان به خط شدیم و یک افسر اساس برای ما سخنرانی کرد بچه ها، از این به بعد شما تحت فرماندهی لشکر اس, اس وایکینگ خواهید بود دفاع از مونیخ بر عهده شماست به یاد داشته باشید که آینده ناسیونال سوسیالیست آلمان در گروه همت شماست ثابت کنید که ارزش را دارید تا آخرین خانه تا آخرین سنگر از مونیخ دفاع خواهیم کرد پیشوا به شما نیاز دارد برای یک فرد آلمانی خدمت به او و جنگیدن در راه او بزرگترین افتخار است. وسوسه شده بودم که بپرسم پیشوا در داخل گور هم دست از سرما بر نمی‌دارد. اما دندان روی جگر گذاشتم و ده دقیقه دیگر هم به سخنان بی سر و ته و باسمه ای او در آخرین دفاع تبلیغاتی از نازیسم گوش کردم. سرانجام از ما خواستند بازوی راست خود را به نشانه احترام بالا آورده، سرود ملی، و سرود هورست و سل را بخوانیم. من دچار گرفتگی از شدم. پس از ما به دسته های کوچک تقسیم شدیم و هر دست زیر نظر یک افسر یا درجه دار قرار گرفت. شنیدم که یکی از درجه داران می گفت چه از قرار معلوم دلش به حال ما میسوخت. هیچ هیچیک از ما بیش از چهارده سال نداشتیم و کوچکترین افراد گروه ما هم دوازده ساله بودند. گروه ما تحت فرماندهی افسری بود که برای ما سخنرانی کرده بود. ابتدا شرح مختصری درباره وظایف ما بیان کرد و سپس ما را به اسلح خانه برد. به من و گونار و مارتین نفری دو عدد بازوکا داد. دیگر دوستانم ویلی و جرد مسلسل سبک و مهمات گرفتند. با طرز کار بازوکا آشنایی داشتیم اما هیچ کدام جرأت نکردیم بگوییم که طرز استفادهی صحیح از مسلسل را نمیدانیم. مسلح به بازوکا و مسلسل به اتفاق افسرمان حدود سراب ساعت در جده های تاریک راه پیمایی کردیم در طول راه متوجه شدم که او یک جعبه مقوایی به خودش حمل می‌کند سرانجام به حومه شهر رسیدیم و در اطراف پر راه آهن موضع گرفتیم ما دستور داشتیم که هر گونه تحرک دشمن را در طول 500 متری جاده اصلی با آتش سنگین پاسخ دهیم افسر ما مسلسرها را کار گذاشت و ما هم بازوکاها را روی نرده ها قرار دادیم. پس از آن به ما گفت باید ابتدای اطلاعاتی از وزد دشمن به دست آورد و سپس با جعبه مقویش در لابلای الافزارهای اطراف ناپدید شد. نطخ پرشوری که در محوطه میدان سربازخانه ایراد کرده بود به تدریج داشت اثر خود را از دست می داد. در حالی که روی زمین مرطوب دراز کشیده بودیم پس شدت سرما میلرزیدیم. احساس می کردیم باران از اونیفورم های نفوذ کرده است و ترس هم مزید بر علت بود ترس و برز ما زمانی به اوج خود رسید که ناگهان یک غیر نظامی از زیر بوته ها و درخچه ها بیرون آمد اول متوجه نشدیم که او افسر خودمان است بدون آن زرخ و برخای های نظامی آدم بد لباسی به نظر می رسید گفت لباس مبدل گفتیم همینطور است یا متوجه لحن ناباور ما نشد و یا متوجه شد و به روی خودش نیاورد. در هر حال بیدرنگ از ما دور شد و در برابر تعجب همه ما به آن که به طرف موازه دفاعی برود، راه منطعی به شهر را در پیش گرفت. مارتین در حالی که به طرف بوته ها شیرجه میرفت گفت، سب کنید ببینم و ناگهان با جعبه که سروان از میان بوته ها بیرون آمد. جعبه را باز کردیم و در نهایت تعجب چشم من به یک آنیفورم کامل اس اس افتاد. نظر ما نسبت به پیمان شکنی او هرچه بود دست کم این حسن را داشت که در آن سرمایه شدید می توانستیم از آنیفورم او استفاده کنیم. با آن لباس های گل و نفری با یک مسرسر و شش بازوکا روی زمین نشسته بودیم و راکت های علامت دهنده را تماشا می کردیم و به صدای شلی که گوش خانه گوش می دادیم. احساس می بدنم خیز شده از ترس خوش گم زده بود میدانستم چه فاجعی در انتظار ماست ما ولی دیگران فقط کمی ترسیده بودند سعی کردیم افکار خود را با وراجی درباره تعداد تانک هایی که هدف قرار خواهیم داد از دیگران پنهان کنیم تماثلاه ما در مقابل با تاریکی رطوبت و ترس همین بود یکی از بچه ها داشت با ما سلسل ور می رفت ناگهان تیری از آن شلیک شد. چیزی نمانده بود که از ترس قالب دایی کنیم. ولی هیچ کس به روی خودش نمی آورد. با آنکه حضور در آنجا را دلیل بر حماقت خود می دانستیم ولی به رغم لافت دلیلی هیچ کدام شجاعت اعتراف به آن را نیافتیم. به علاوه گرسنگی که بزرگترین بلای جان همه پسر بچه هاست نیز در شجاعتمان رخنه کرده بود. مارتین از جا برخواست و گفت که برای جستجوی غذا سری به اطراف میزند ویلی هم دنبال او راه افتاد پس از آنها نوبت من بود و گنار و جرد هم چندان با ما فاصله نداشتند دوباره در جاده به یکدیگر بستیم و همچنان که با شرمساری علائم انیفرم اس, اس را دور میانداختیم از نگاه کردن به یکدیگر خجالت میکشیدیم اصلحهٔ خود را زمین گذاشته و با فرار کردن عملا رخنهای در دفاع ایجاد کرده بودیم من که شخصا هیچ ناراحت نبودم تنها نگرانیم این بود که مبادا توسط گشتی‌های اس اس دستگیر شویم. همچنان که در طول جاده پیش می‌رفتیم، بر ترس و وحشتم افسوده می‌شد. زیرا به چشم خود می‌دیدیم که گشتی‌های اس اس چگونه یک گروه با نرتش را به جرمان که نتوانسته بود مدارک قابل قبولی برای غیبت از یگان جمعی خود ارائه دهد، به تیر چراغ برق آویزان کرده بودند. زیر نگاه مزنون دشبان ها و کمال خون سردی در حالی که بازوی خود را به نشانه احترام بالا کرده بودیم از کنارشان گذشتیم. ظاهرا به علت سن و سالمان ما را قابل بازجویی ندیدند. با اینکه 24 ساعت بود که چیزی نخورده بودیم، حالت تحوا داشتم به طوری که گاه مجبور می شدم، دور از چشم دیگران توقف کنم تا حالم جا بیاید. در راه بازگشت به شهر به جسد چند سرباز دیگر که به علت فرار از جبهه از درخت یا تیر شراغ برق آویزان شده بودند، برخورد کردیم. وقتی در شهر به میدان اودون رسیدیم، دو سرباز گشتی جلوی ما را گرفتند و پرسیدند در آنجا چه می من گفتم جمعی یگانی هستیم که منحل شده و قرار است خود را به سازمان جوانان هیتلری معرفی کنیم. به دستور آنها پشت سرشون به راه افتادیم. بدبختان دام دیگری هم در سر راه ما بود، ما را به بنای یاد بوده مکسیمیلیانوم در ساحل شرقی رود ایزار بردند. خانه من درست آن طرف پل بود و با پای پیاده کمتر از پنج دقیقه طول می گشید. نگهبان مکسیمیلیانوم ما را تحویل گرفت و پس از بارا رفتن از پله های متعدد به اتاقی رسیدیم که ظاهراً خوابگاه بود. گفت به امید دیدار. اما پیش از رفتن قوطی تیستوسیس و دو قرص نان به داد. پس از صرف یک بعد غذای مقوی که سخت به آن نیاز داشتیم آثار خستگی روز ظاهر شد و طولی نکشید که به درون جایگاه خواب خود خزیدیم و خیلی زود به خواب عمیقی فرو رفتیم